اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وایل لكل همزه لمزه به نام خداوند بخشنده بخشایشگر وای بر هر عیب جوی مسخره کننده ای الذي جمع مالا وعدده همان کس که مال فراوانی جمع آوری و شماره کرده بی آنکه که مشروع و نامشروع آن را حساب کند. ان او گمان میکند که اموالش او را جاودانه میسازد. کل لن ينبذن چنین نیست که میپندارد به زودی در حطمه آتشی خورد کننده پرتاب شود. و ما ادراکم الحطمه و تو چه میدانی حطمه چیست نار الله الموقده آتش برف روخته است تطلع تقلع علی آتشی که از دلها سر میزند اینها مقصده این آتش بر آنها فرو بسته شده در ستونهای کشیده و طولانی